عزیزان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن مطالعاتمون به کتاب مزامیر رسیدیم. جایی که یاد گرفتیم چگونه خداوند رو پرستش کنیم و چطور دعا کنیم. از مزامیر دعایی یاد گرفتیم که برای هر درخواست و نیاز و مشکلی چطور به حضور خدا نزدیک بشیم و لذت ببریم. متشکریم که دانشجوی وفاداری بودین. حالا امروز به درس معلممون گوش میکنیم. امروز میخواهیم بعضی از مزامیر احساسی رو با هم بررسی کنیم. به این کلام مزمور چهار گوش کنید. ای خدای ادالت من، چون به خانم مرا مستجاب فرما، در تنگی مرا وسعت داده ای بر من کرم فرموده دعای مرا بشنو. ای فرزندان انسان، تا به کی جلال من آر خواهد بود و به را دوست داشته، دروغ را خواهید طلبید. صلاح اما بدانید که خداوند مرد صالح را برای خود انتخاب کرده است و چون او را بخوانم، خداوند خواهد شنید. خشم گیرید و گناه مورزید در دلها بر بسترهای خود تفکر کنید و خاموش باشید. صلاح، قربانی های ادالت را بگذرانید و بر خداوند توکل نمایید. بسیاری میگویند کیست که به ما احسان نماید؟ ای خداوند، نور چهره خیش را بر ما برافراز شادمانی در دل من پدید آورده ای بیشتر از وقتی که قلب و شیره ایشان افسون کردی به سلامتی میخسبم و به خواب هم میروم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی. اینها کلمات زیبای مزمور چهار هست. وقتی مزمور چهار رو میخونید، میتونید ببینید که به نوع متفاوتی از مزامی رسیدیم. چندین مزمور از مزامیر مرد برکت یافته را بررسی کردیم و دیدیم که باید روی کرد ما به اونها چطور باشه و چطور این مزامیر مرد برکت یافته را تفسیر کنیم حالا به نوع دیگری از مزامیر رسیدیم و اینها مزامیر دعایی هستند قبلا گفته بودم که گاهی مزمور نویس با خدا در مورد خدا صحبت میکنه که پرستش هست، گاهی او با مردم درباره خدا صحبت میکنه که موعظه است و اکثر مزامیر مرد برکت یافته موعزه ها هستند. اما نوع سوم مزامیر مزامیر دعایی هستند و مزامیر دعایی اکثر اوقات یکی از اون مزامیر تجربی احساسی هست وقتی به این مزامیر دعایی می رسید شما از نظر عاطفی با خودتون مواجه می شید اگه کتاب مزامیر رو هر روز بخونید از هر حال و هوای احساسی که عبور می کنید می در مزامیر دعایی حال و هوایی مشابه احوال روحانی خودتون پیدا کنید. میتونید ببینید که مزمور نویس همون تجربیات عاطفی رو گذرونده که شما الان تجربه می کنید. مثلا مزمور نویس به شما راه عبور از بیابان مشکلات عاطفیتون رو نشون میده. وقتی که حال و هوای عاطفی شما مشابه با مزمور نویس هست و چندان مقبول نیست، تا انتهای مزمور رو بخونید و ببینید که مزمور نویس چطور مشکلات عاطفی‌ش رو حل کرده. حال و هوای داوود در مضمور چهار یکی از اندوهناکترین شرایط هست ما میشنویم که داوود دعا میکنه در تنگی مرا وسعت دادی در این مزمور داوود به ما میگه وقتی در بحران هستیم وقتی از طوفانهای اندوه و پریشانی عبور میکنیم خدا ما رو رشد میده و ظرفیت ما رو برای شناخت محبت پرستش و خدمت خودش افزایش میده امروز در فرهنگ خودمون کلمات استرس و تنش رو به کررات میشنویم این دقیقا همون کلمه که در مزمور با کلمه تنگی بیان شده. این کلمه حال و هوای احساسی داود رو در مزمور چهار نشون میده. داوود مضطرب هست و استرس داره. سالها پیش شبانی رو میشناختم که به یک مرکز آیروبی که یکی از کلینیک ها رفت. دکتر کوپر متخصص کاردیوگرافی بود و مطالب زیادی در مورد ریتم قلب برای دوندگان نوشته. او مربی بسیاری از دوندگان هم هست. وقتی به کلینیک او میرید و از ساعت هفت صبح تا چهار و نیم بعد از ظهر اونجا وقت میگذرونید و با دکترتون صحبت میکنید قطعا با تجربه ناخوشایندی مواجه خواهید شد. او به این شبان گفت: هفت علامت هستند که نشون میدن کسی دچار حمله قلبی و یا سکته خواهد شد. به مرور زمان شما شش علامت از اون علائم رو پیدا کردید. تنها علامتی که او نداشتیم بود که سیگار نمیکشید. وقتی که دکتر از ناهنجاری ووضعش با او صحبت کرد، او گفت اگر معیار نگرانی از یک تا ده باشه شما خودتون رو چطور از دیابی می‌کنید؟ او گفت او شاید یک یا دو. و دکتر جواب داد نه نهونیم و شاید هم ده. تو استرس داری آقای شبان. تو میتونی به خودت بگی که آرامشی رو که مسیحیان باید داشته باشند داری. خود دکتر هم یک مسیحی خوب بود. و ادامه داد تو میتونی به خودت بگی که آرامش داری. اما هیچ کدوم از این دستگاه‌های سنجش دروغ نمیگن تو استرس داری جناب کشیش اگر استرس دارید میتونید با خودتون در مزمور چهار مواجه بشید چون که وقتی داود اون مزمور رو مینوشت او هم از چنین تجربیاتی عبور میکرد داوود هم استرس داشت و زیر فشار بزرگی بود به نظر میرسه که او به خاطر شرایط احساسیش نمیتونست بخوابه استرس همیشه با بیخوابی همراهه داوود به ما نشون میده که با این گناه دو چه برخوردی بکنیم اولاً کلمات این مزمور رو ملاحظه کنید. ای خداوندم، ای خداوند عادل، دعای مرا بشنو. بر من کرم فرموده، دعای مرا بشنو. داوود با خدا در مورد انسان صحبت میکنه. در این مورد انسان خود داوود هست. وقتی داوود دعا میکنه، خدا به او کمک میکنه. میتونید تصور کنید که این در نیمه شب اتفاق بیفته. به نوعی مکاشفات داوود در نیمه شب بوده و در اون موقع به نتایجی دست پیدا میکنه دعا صحبت با خدا هست اگر شما آدم خوش صحبتی باشید میدونید که مهمترین قسمت یک مکالمه قسمتی هست که طرف مقابل صحبت میکنه نه زمانی که شما صحبت می کنید وقتی مردم میگن شما آدم خوش صحبتی هستید می خوام با شما صحبت کنم احتمالا منظورشون اینه که شما شنونده خوبی هستید شنونده خوب میتونه آدم خوش صحبتی باشه اگر دعا صحبت با خدا هست که همین طور هم هست پس دعا دو بود داره یک بودش زمانی که شما با خدا صحبت می کنید که این خیلی مهمه و چیزهایی است که خدا می از شما بشنوه اما بوده دیگری از صحبت با خدا هست و اون زمانیه که خدا با شما صحبت می کنه. وقتی که به مزامیر دعایی نگاه می یادتون باشه که توجه کنید این مزامیر دو بود داره. مزمور نویس چیزی به خدا میگه و بعد خدا با مزمور نویس صحبت میکنه ملاحظه کنید که چطور اغلب او از خدا درخواست می و بعد از اون اطمینان پیدا میکنه که خدا او رو شنیده و به دعای او پاسخ داده. در این مزمور داوود مشکل استرسش رو با خدا در درمیون میذاره. او مضطربه و با خدا در این مورد صحبت میکنه و خدا با دادن یک مکاشفه به او پاسخ میده. بعد ما میشنویم که داوود میگه میدونه که خدا او رو به عنوان سرسپرده خودش جدا کرده و میگه چون او را بخوانم خداوند خواهد شنید و بعد میگه بلرزید و گناه نکنید. هر وقت یکی از دعاهای شما جواب میگیره شما دیگه هرگز اون آدم قبلی نیستی فقط به این فکر کنید که یک دعای مستجاب شده یعنی چی شما نزد خدا ناله میکنید و او به شما پاسخ میده معنی این چیه معنیش اینه که خدا علاقمنده میشنوه و پاسخ میده وقتی که این واقعیت رو آزمایش میکنید دیگه هرگز اون آدم قبلی نخواهید بود بزرگترین برکتی که من در طول خدمتم داشتم یک چک 15 دلاری بود که روزی به صندوق پستیم انداخته شده بود. دارایی من در بانک محلی تموم شده بود، دانشک هشدار داده بود که هر دانشجویی که حساب بانکیش تموم بشه با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. روز جمعه بود که به ما هشدار دادند و حساب بانکی من به سیزده و رسیده بود. من سرتاسر سر آخر هفته رو دعا کردم که تا روز دوشنبه صبح مقداری پول به حساب بانکیم واریز بشه. وقتی روز دوشنبه به صندوق پستی مراجعه کردم، یاد داشتی از یک مرد خدا بود که من او رو میشناختم. او نوشته بود ما فکر می شما برای کریسمس به دیدن ما خواهید اومد و میخواستیم که یک کتاب به شما به عنوان هدیه کریسمس بدیم. اما چون شما نیومدید خدا ما رو هدایت کرد که این چک را برای شما بفرستیم. مبلغ چک پانزده دلار بود برای کسی که دانشجو هست و کار نمیکنه این مبلغ زیادیه. این چک 15 دلاری بزرگترین برکتی بود که من در دانشگاه گرفتم. چون چک، به من نشون داد که خدایی هست که همیشه حاضره. من نزد او ناله کردم و او منو شنید و به دعای من پاسخ داد وقتی خدا با ما چنین کاری میکنه هیچ کدام از ما دیگه اون آدم قبلی نیستیم به این دلیلی که داوود میگه وقتی خدا به دعاهای شما جواب میده بلرزید و گناه نکنید وقتی که خدا به صحبتش با داوود ادامه میده او رو به چیزی هدایت میکنه خدا به او میگه در دلها بر بسترهای خود تفکر کنید و خاموش باشید. ملاحظه کنید اغلب کتاب مقدس میگه خاموش باشید و بدونید که من خدا هستم. این چیزیه که ما در مزمور 46 میخونیم. در مزمور چهار خدا به داوود مزمور نویس میگه خاموش باش. به من گوش کن. بعد خدا میگه در دلها بر بسترهای خود تفکر کنید. میدونید معنی این چیه؟ معنیش اینه که با خودتون حرف بزنید. آیا فکر می‌کنید کسانی که با خودشون حرف می‌زنن دیوانند؟ کسانی که با خودشون حرف می‌زنن دیوانه نیستن. یک بار شنیدم مردی میگفت من با خودم صحبت می‌کنم چون که این تنها زمانیه که با شخص باهوشی صحبت می‌کنم و درباره شخص باهوشی صحبت می‌کنم و البته با خودم صحبت می‌کنم. به اعتقاد من چیزی که خدا اینجا به منظور نویس میگه اینه. با خودت ملاقات کوتاهی داشته باش. بر روی بستر خودت با قلب خودت حرف بزن و خاموش باش. منظور از این مکالمه کوتاهی که او فرزن در نیمه شب با خودش حرف میزده چی بود؟ آشکارا داوود مضطرب بود چون که داوود باید برای انجام کارهای درست تصمیماتی می گرفت انجام کارهای درست به ندرت کارهای آسونی هستند. ما در سرتاسر سر روز هر روز تصمیماتی می گیریم آیا ما کارهای درست را انجام خواهیم داد یا لزوماً کارهای آسون تر رو؟ بسیاری از مردم از جمله ایمانداران اعتراف کرده به جای کارهای درست کارهای مقتضی را انجام میدند چون که کارهای درست غالبا مشکل هستند شما باید برای انجام کار درست بهایی پرداخت کنید بنابراین به صورت غیر ارادی ما کارهای مقتضی را انجام میدیم یقینا داوود تحت چنین فشارهایی بوده وقتی خدا با داوود حرف میزنه وقتی که صحبت‌های خداوند رو میشنویم داوود هنوز در مقابل خدا ایستاده و به خدا گوش میکنه. وقتی خدا به او میگه قربانی های ادالت را بگذرانید و بر خداون توکل نمایید، خدا بر کارهای درستی که داوود باید انجام بده تاکید میکنه. چون خیلی هستند که شما را تماشا میکنند و خواهند پرسید کی به ما چیزهای خوبی نشون خواهد داد؟ این فشار هست، این بحرانی هست که در این مکالمه دعایی داوود با اون مواجهه. می بینید که مهمترین بخش این گفتگو با خدا بخشی نیست که شما با خدا صحبت می کنید. اون مهم هست چون که چیزهایی هست که خدا میخواد از شما بشنوه خدا میخواد که بشنوه شما به گناهانتون اعتراف می کنید. خدا میخواد که پرستش ها و از خود شما رو در مقابل او بشنوه خدا میخواد که درخواست و نیازهای خودتون رو به حضور او بیارید. چیزهای زیادی هستند که خدا میخواد از شما بشنوه اما مهمترین بخش مکالمات خدا با شما زمانیه که خدا با شما حرف میزنه من چیزهای زیادی به خدا گفتم که مطمئن نمو میخواد از من بشنوه اما هرگز چیزهایی به خدا نگفتم که او را متعجب کنم هرگز چیزی به خدا نگفتم که او جا بخوره هرگز به خدا چیزی نگفتم که او خیلی بهتر از خود من اون رو نمیدونسته در حالی که خدا چیزهایی به من گفته که من رو متعجب کرده چیزهایی گفته که جا خوردم چیزهایی به من گفته که از قبل نمیدونستم به این دلیلی که دعا یک خیابان دو طرفه است دعا مکالمه با خدا هست. وقتی داوود با تنشهاش به حضور خدا اومد، او مضطرب بود داوود در مورد تنشهاش با خدا صحبت کرد و نزد او ناله کرد وقتی که داوود بر روی بسترش با قلبش صحبت کرد و هنوز مشتاق بود که بیشتر از خداوند بشنوه حتی صدای آرامی از خداوند خدا به او گفت تو باید تصمیمات درستی بگیری باید اون آرزوت رو با قربانی همراهی کنی این تصمیمات در مورد چنین های بزرگی که شما خواهید داد مفهومش اینه که به من اعتماد خواهید کرد تا من نتایج مطلوبی به بار بیارم بدون اعتماد به من هیچ راهی نیست که بتونید برای من قربانی بدید نصیحت من به شما در مقابل تنش شما اینه هر قربانیی که لازم هست بکنید تا کار درست را انجام بدید. در قلبتون این را حل کنید که شما قربانی ادالت تقدیم خواهید کرد. انگیزه چون این کاری اینه که میتونید این قربانی های ادالت رو برای جلال من بدید. چون شما من رو دوست دارید و با کسانی یه شدید که میپرسند چه کسی چیزی نیکو به ما نشان خواهد داد. مکالمه داود با خدا رو در زندگی خودتون به کار بگیرید من و شما با افراد یواش شدیم که از ریاکاری خسته شدند ریاکاری انعطاف پذیری در دنیا هست و مردم همه جا ریاکاری رو می‌بینند هیچ کس قربانی ادالت رو تقدیم نمی‌کنه و هیچ کس کار درست رو انجام نمی‌ده هر کسی کار خودش رو می‌کنه که آسونتر هست تعداد اندکی هستند که به خدا اعتماد می‌کنند و کار درست رو انجام می‌دهند حتی اگر براشون گرون تموم بشه این دقیقا مشکلی هست که داوود در مزمور چهار به اون اشاره میکنه. وقتی که داوود در نیمه شب مدت با این مسئله کلنجار رفت، او در قلبش این مشکل رو حل کرد و با خودش گفت: من قربانیهای ادالت رو تقدیم خواهم کرد و بر خداوند توکل خواهم کرد. راه دیگر برای گفتن همون چیزینه: نخست در پی پادشاهی خدا و ادالت و او باشید. این چیزیه که او به شما نشون میده تا نیکو کار باشید. و بعد میگه و تمامی این چیزها به شما داده خواهد شد. تمامی چیزهایی که شما نگرانش هستید وقتی به خدا اعتماد کنید و کار درست انجام بدید به شما داده خواهد شد. این کلامی بود که داوود از خداوند دریافت کرد. وقتی داوود به این نتیجه رسید که او اون کار رو خواهد کرد، ملاحظه کنید که در پایان مزمور چه تغییری در حال و هوای احساسی او به وجود اومده. او میگه شادمانی در دل من پدید آورده به سلامتی میخوستم و به خواب هم میروم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی وقتی داوود سرسپردگیش رو به خدا اعلام کرد او احساسات زیبایی مثل آرامش رو تجربه کرد آرامش شادی و امنیت رو تجربه کرد داوود به خاطر چه چیزی حال هوای احساسی شاد شد شادی و امنیت و خواب زمانی بر او آمدند که او به این نتیجه رسید که کار درست انجام خواهد داد و به خدا اعتماد خواهد کرد داوود نه تنها به این باور داشت که باید به خدا اعتماد کنه تا او نتایج تصمیم درست او رو به بار بیاره بلکه این رو هم میدونست که فقط خدا می تونه او رو در امنیت ساکن کنه منبع امنیت ما چی هست؟ مزمور چهار به لحاظی مشابه معزه سر کوه متا باب شش هست چه کسی سووسن صحرا رو می پوشونه؟ کیه که به پرندگان کوچک غذا میده چه کسیه که به شما غذا میده و شما را میپوشونه خدا برای امنیت به چه کسی نگاه میکنید آیا واقعا به خدا نگاه میکنید که شبان شما باشه و به شما های سبز آب های آرام بده مزمور چهار مثال زیبایی از مزامیر احساسی دعایی هست ببینید او قرار هست چطور کار کنه اگر زمانی احساس کردید که احساساتی مشابه احساسات داوود دارید اگر استرس زیادی دارید، اگر باید تصمیم بزرگی بگیرید و نمیتونید بخوابید، بذارید مزمور چهار راه برون رفت از این بیابان احساسی رو به شما نشون بده. کافیه که با خودتون ملاقات کوتاهی داشته باشید و بعد با خدا صحبت کنید تا اینکه خدا بر تصمیم درستی که شما باید بگیرید اشاره کنه بعد به او اعتماد کنید و قربانی های عدالت تقدیم کنید تا ببینید که فرمان خدا برای تبدیل تنشهای شما به استراحت صادر میشه. ملاحظه کنید وقتی که حال هوای احساسی داود را همونطور که در مزمور پنج و پنج دیدیم تشخیص میدیم. ای خدا به دعای من گوش بگیر و خود را از تذرع من پنهان مکن به من گوش فرا و مرا مستجاب فرما زیرا که در تفکر خود متهیرم و ناله می کنم از آواز دشمن و به سبب ظلم شریر زیرا که ظلم بر من میاندازند. و با خشم بر من جفا می کنند. دل من در اندرونم پیچ و تاب می و ترس های موت بر من افتاده است ترس و لرز به من در آمده است وحشتی هولناک مرا در گرفته و گفتم کاش که مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده استراحت می یافتم هر آینه به جای دور می پریدم و در صحرا معوا میگزیدم. می به سوی پناهگاهی از باد تند و از طوفان شدید ای خداوند آنها را حلاک کن و زبانهایشان را تفریق نما زیرا که در شهر ظلم و جنگ دیدم روز و شب بر حسارهایش گردش میکنند و شرارت و مشقت در میانش می باشد فسادها در وی است و جور و هیله از کوچه هایش دور نمی شود سیرا دشمن نبود که مرا ملامت می کرد و الا تحمل می کردم و خسم من نبود که بر من سربلندی می نمود و الا خود را از وی پنهان می ساختم بلکه تو بودی ای مرد نزیر من، ای یار خالص و دوست صدیق من. نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به عبد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد و تو ای خدا ایشان را به چاه حلاکت فرو خواهی آورد. مردمان خونریز و حیلساز روزهای خود را نیمه نخواهند کرد. لکن من بر تو توکل خواهم داشت. من بارها ضمن این بررسی گفتم شما میتونید از کتاب‌های سمائیل و تواریخ که تکرار همون وقایع سمائین هستند دیدگاهی تاریخی به دست بیارید وقتی که این مزمور رو میخونید داشتن دیدگاهی تاریخی بسیار اهمیت داره شما نمیتونید این دیدگاه تاریخی رو از نوشته های اول مزامیر به دست بیارید شما از محتوای این مزمور میتونید زمینه تاریخی این مزمور رو به دست بیارید بر اساس پاراگرافی که در مزمور 55 هست، ما باور می‌کنیم که داوود این مزمور رو بلافاصله بعد از زمانی نوشت که پسرش ابشالوم که با تمام قلبش او رو دوست داشت، به دنبال نصیحت یکی از نزدیکترین دوستان داوود، با همسران پدرش در مقابل دیدگان مردم اسرائیل بر بالای پشت بام قصر خوابید. منظور از این عمل این بود که با داوود دشمنی کنند و او را تهدید کنند که با نیروهای ابشالوم قبل از اینکه آماده باشه بجنگه با این عمل پست قصد داشتند که قلب قوم بنی اسرائیل رو یک پارچه کنند که وفاداریشون رو به داوود و یا به ابشالوم نشون بدن. چنین مشفرت رحمانی رو مردی به نام اخی که یکی از بهترین دوستان و مشاوران مورد اعتماد داوود بود به پسرش ابشالوم داد. آیا میتونید تصور کنید که چطور مردی که مزمور 23 رو نوشته و نوشته که من مرطهای سبز و آبهای آرام دارم و در تمامی ایام عمرم تا به ابد کاسم هموار لبریز هست میتونه مزموری مثل مزبور 55 بنویسه بعد از خواندن مزبور سه شاید گمان کنید که مردی که مزبور را نوشته در تمامی طول روز کنار جویبار نشسته و گوسفند کوچکی رو که صدای بعبع میکنه نگه داشته شاید فکر کنید که نویسنده مزبور شبان هرگز مشکلی نداشته، هرگز واقعا زندگی سختی نداشته و با مشکلاتی که شما در دنیای واقعی مواجه هستید مواجه نبوده. در مزمور 55 وقتی داوود حال هوای احساسیش رو بیان میکنه به او گوش کنید؟ او میگه من ماتم گرفتم. داوود اندوهکین هست. او میگه من ناله برمیآورم این بیان بسیار زیبایی هست. شنیدین که میگن ظرف خالی صدای بلندتری داره. وقتی که کنار یک بوشکه‌ی بزرگ با چکش چک ضربه بزنید، اگر پر باشه صدای بلندی از اون در نمیاد. اما اگر خالی باشه صدای بلند و پرتنینی از اون در میاد. به ما فرمان داده شده که با روح القدس پر باشیم. خونو آدم میتونن به شما بگند که وقتی من پر از روحم زیاد سر و صدا نمی کنم، اما وقتی از روح پر نیستم کلی سر و صدا میکنم. فکر می کنم که داوود به ما میگه وقتی مزمور پنج, و پنج رو می نوشته و با وقایعی که در این مزمور شهر داده شده مواجه میشه، پر از روح القدس نبوده. او در اون مرحله زندگیش جایی بوده که نمیگه خداوند شبان منی. در این مرحله داوود شبان زندگی خودش شده بود و همین هم او رو به سمت گناه برد. داوود مرتکب گناه زناب و قتل شده و سعی داره اون رو بپوشونه. داوود در رابطه دوستی با خدا نبود. اون رابطه ای که با اون کلمات زیبا توصیف کرده خداوند شبان من است برقرار نبود داوود داشت اواقب گناهش رو پرداخت می کرد. او وقتی می گفت در تفکر خود متحیرم من ناله می کنم داشت از صفره اواقب گناهانش می خورد که از سبزی های هم تلختر بود در ادامه شرح حال و هوای روحانیش داوود می گه دل من در اندرونم پیچ و تاب می کند قبلا هم گفتم که کتاب ایوب برای دردمندان نوشته شده و در جای جای این کتاب شعر، پیغام برای دلهای دردمند و شکسته وجود داره. داوود اینجا دردمنده، دلش شکسته و میگه ترس و وحشت منو احاطه کرده. به یاد بیارید که این همون مردی هست که نوشت از هیچ بدی نخواهم ترسید. حالا در موقعیت گناه حالود خودش می نویسه، به خاطر چیزهایی که برایم پیش آمده، ترس و وحشت از هر سو منو احاطه کرده. مینویسه من خشم و ظلم شریر رو دیدم جنگی بی امان و سخت در جریانه اولین واکنش داوود به همه اینها این هست و گفتم ای کاش مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده استراحت می یافتم هراینه به جای دور می پریدم و در صحرا معوا میگزیدم و بعد او میگه گه سلاح. یادتونه که گفتیم معنی کلمه صلاح یعنی بیستید و در مورد اون تفکر کنید آیا تا حالا با بحرانی مواجه شدید؟ مخصوصا وقتی اون شما رو غافلگیر گیر کرده و اولین واکنشتون گوشه گیری بوده؟ آرزو کردید که ای کاش از این وز بیرون میرفتم، کاش میتونستم به جای دور برم، بگذار تا سر به بیابون بذارم و تا میتونم در اونجا بمونم؟ کاش مثل کبوتر بال داشتم و از این مخمسه پرواز میکردم؟ به طور معمول اولین واکنش ما در برابر شرایط قمانگیز گوشه گیریه اما قالب اوقات اولین واکنش ما چیزی نیست که نهایتا خدا از ما میخواد وقتی کمی در مورد اون فکر بکنیم میبینیم گوشهگیری واکنشی نیست که ما با فیض خدا از خود نشون بدیم وقتی که مدتی گذشت داوود بر این احساسش قلبه کرد که میخواست بال داشته باشه و از اون شرایط بحرانی فرار کنه بعد داوود به نتیجه متفاوتی میرسه وقتی میشنویم داوود میگه و اما من نزد خدا فریاد میکنم. و خداوند مرا نجات خواهد داد. داوود هرگز به نجات خداوند شک نمیکنه. و اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. شامگاهان و صبح و زور شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید. بعد داوود پاسخی برای دعاش دریافت میکنه. خداوند آشکارا صحبت یک سویه داود رو تبدیل به گفتهگویی میکنه. این تبدیل رو در بسیاری از مزامیر دعایی می بینیم حالا میشنویم که داوود میگه جانم را به سلامتی فدیه داده است. اگرچه هنوز این اتفاق نیفتاده، اما داوود اطمینان قطعی داره که او رو نجات داده. در زبان عبری وقتی نبی میگه خدا کاری رو انجام خواهد داد، او طوری صحبت میکنه که گویی این امر در گذشته اتفاق افتاده. چون اگر خدا گفته کاری انجام خواهد داد، یعنی این کار خاتمه یافته هست. به این زمان گذشته کامل نبوتی میگن داوود مطمئنه که خدا او و مردان مقتدر او رو از شورشی که پسرش ابشالوم برای سرنگون کردن او به راه انداخته نجات خواهد داد خدا داوود رو نجات داد داوود به ما نشون میده که این نجات هنوز پیش نیومده چون او میگه خدا خواهد چنین و ایشان را جواب خواهد داد یادتونه وقتی دوم سموئل رو بررسی میکردیم دیدیم که ابشالوم تمامی قوم رو بر علیه داوود برانگیخت، اما خدا از مردان مقتدر داوود استفاده کرد تا داوود و قوم او رو از دست ابشالوم نجات بده. داوود حال و هوای احساسی رو توضیح میده که بعضی از ماها اون رو تجربه کردی. اگرچه شاید زمانهایی در زندگی ما باشه که همه ما تا حدودی اون احساسات رو تجربه کرده باشیم. آیا ماتم رو تجربه کردید؟ آیا ترس رو تجربه کردید؟ امروز جنبش تروریستی بسیار قوی هست کسانی هستند که میدونند اگر مردم رو بترسونند، میتونند از اونها هر چیزی بگیرند. پس امروز ایجاد روب و وحشت تبدیل به راهی برای اداره کردن مردم شده. آیا تا حالا تهدید شدید یا ترسانیده شدید؟ آیا چیزی براتون پیش اومده که سبب شده وحشت تمام وجودتون رو بگیره؟ اگر این حال و هوای احساسی شما بوده و یا همین الان چنین حال و هوایی دارید، در کتاب مقدس در احساسات داوود با خودتون روبرو بشید. داوود جایی بوده که شما هم بوده اید یا همین الان هستید. داوود میدونه که با احساساتی مثل ترس و وحشت و مشکلات ناشی از آن چه برخوردی باید بکنه. ترس و وحشت احساساتی هستند که داوود در مزمور پنجاه و پنج نشون میده. داوود گفت من نزد خدا فریاد میکنم میدونم که خدا به دعای من جواب خواهد داد. خدا منو نجات خواهد داد داوود نزد خدا ناله میکنه فقط یک راه برای خروج از این بحران وجود داره خداوند تو باید بیای و منو نجات بدی چون اگه تو نیایی و منو نجات ندی هیچ نجاتی نخواهد بود به این دلیلی که تو رو صدا میکنم با فریاد کردن نزد خداوند داوود به ما به صورت مستقیم نشون میده و یاد میده که وقتی با چنین شرایط بحرانی مواجه میشیم چه کار باید بکنیم او میگه نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به عبد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد. اینها کلمات زیبای تسلی بخش، آرام بخش و راهنمایی هایی برای قلب های دردمند هست. من نمیدونم بار شما چیه و شما نمیدونید بار من چیه. ما کنار دست هم میشینیم ولی نمیدونیم در قلب دیگری چی میگذره. اگه شما بارهای کسانی رو که در چپ و راست شما نشستن میدونستید دونستید، احتمالاً اونها رو عذیت نمی کردید. همه ی ما بار داریم. بعضیامون شاید بارهای سنگینی داریم. شاید در زمانهای جنگ و یا بلایا ما تجربیات احساسی رو که داوود در مزمور پنجاه و پنج از اونها عبور کرده تجربه کردیم. شاید ما همین الان این چیزها رو تجربه نمی کنیم اما زمانهایی خواهد بود که اونها رو تجربه خواهیم کرد. حتی فکر جنگهای هسته‌ای ما رو به ترس و وحشت میندازه در طول عمرمون ما مرگ عزیزانمون رو تجربه می‌کنیم و یا قصههای شخصی خودمون رو داریم در زندگی هر کدام از ما دردهایی خواهد آمد اما وقتی این اتفاق افتاد و شما با ترس و وحشت احاطه شدید به مزمور پنج مراجعه کنید که میگه نصیب خود را به خداوند بسپار هرچی چی که باشه و تو را رزق خواهد داد او تا به ابد نخواهد گذاشت مرد عادل جنبش خورد این کاری بود که داوود کرد این کاری که داوود به من و شما در و 55 نصیحت میکنه که انجام بدیم منبع این طوفان در قلب مزبور شهر داده شده ما میخونیم که میگه زیرا دشمن نبود که مرا ملامت میکرد و الله تحمل میکردم و خصم نبود که بر من سربلندی می نمود و الله خود را از وی پنهان می ساختم بلکه تو بودی ای مرد نظیر من ای یار خالص و دوست صدیق من که با یک دیگر مشورت شیرین می کردیم و به خانه خدا در انبوه می, می او اشاره به کسانی می کنه که عهد صلح با او رو شکستند و میگه موت بر ایشان ناگهان آید و زنده به گور فرو روند زیرا شرارت در های ایشان و در میان ایشان است وقتی که یک دوست صمیمی به شما خیانت می کنه و شما شرایط غمنگیزی رو تجربه می کنید این خود شما نیستید که باعث بروز چنین حال هوای احساسی شدید. بلکه به خاطر دوست صمیمی هست که از شما رو برگردونده. این احتمالا شایع ترین دردی هست که هر کسی می تونه تحمل کنه تا حالا چنین دردی رو تجربه کردید؟ آیا یک دوست صمیمی و نزدیک شما چنین خیانتی به شما کرده، کلمه کنونیا در زبان یونانی در عهد جدید کلمه ایه که دوستی ترجمه شده و معنیش چیزی مثل شراکت هست. اون شامل عهدی میشه که بین دو نفر برای مشارکت منعقد میشه. اونها به همدیگه وفادار هستند. وقتی عیسی به شاگردانش گفت که فرمانی تازه به شما میدم، همدیگر رو محبت کنید، او داشت به اونها فرمانی میداد که اونها رو به پیمانی تازه هدایت کنه. اونها با همدیگه عهد بستند که رو دوست داشته باشند. و با اون پیمان اجتماعی تازه به وجود اومد، اجتماع محبت، یک اجتماع کوچک آسمانی که با انعقاد این پیمان محبت به وجود آمد. کلمه مترادف کنونیا در زبان عبری کلمه حسد هست. داوود با مردانش پیمان حسد داشت. داوود با مردی به نام اوریای حتی که یکی از مردان مقتدر او بود پیمان حسد داشت. بدترین گناه داوود گناه جنسی او با بتشبه نبود بلکه کشتن اوریا بود داوود بر پیمان حسد که بین او و اوریا بود خیانت کرد شیادی مثل یعقوب پدرش اسحاق رو فریب میده و بعد یعقوب توسط دایش لابان فریب میخوره این تنبیه خداوند برای افراد فریبکار هست. داوود بر پیمان حسد با اوریا یحی خیانت میکنه و حالا داوود از خیانت مردی به نام اخیتوفل که برای داوود حکم مشاور و پدر رو داشت و پیمان هستد را با داوود شکسته بود، قلبش زخمی شده. خیانت اخیتوفل بخشی از عواقب گناه داوود بود. داوود وقتی که فرمان قتل اوریا رو صادر کرد، بذر خیانت رو کاشت و حالا چیزی رو که کاشته بود درو می کرد. بنابراین داوود مسئول این شرایط بحرانی بود که داشت در زندگیش تجربه میکرد. پیغامی که داوود میخواد در مزمور پنجاه و پنج با ما در میون بذاره در مورد سرزنش کردن نیست. وقتی که او از تجربیات قمعیزه خودش در این دور از زندگیش در این مزمور حرف میزنه، قصد داره که به ما بگه در میانه اون شرایط بحرانی چی کار کنیم. خواه ما خودمون مسئول اون شرایط باشیم یا شرایط تصادفی باشن، داوود به ما توصیه میکنه که مشکلات بحرانیمون رو به خدا عرضه کنیم. فراموش نکنید که داوود در مزمور 55 به ما نشون میده که در شرایط ترس و وحشت و دلشکستگی چیکار کنیم. او میگه نصیب خود را به خداوند بسپار. هر چی که باشه او تو را رزق خواهد داد. اولین باری که ما باید به خداوند تسلیم کنیم بار گناهانمون هست. آیا تا حالا این کار رو کردید؟ اگر نکردید نمیتونید بارهای دیگر را به خدا بسپارید. اول باید در مورد بارهای گناه و شک به خدا اعتماد کنید، بعد میتونید بارهای دیگر را هم به او بسپارید و او شما رو رزق خواهد داد. دانشجویان عزیز، معلم ما یک بار دیگه با کلام خدا ما رو به چالش کشید که در هر چیزی به خداوند اعتماد کنیم، در مشکلاتمون و در چیزهایی که ما رو مسترب میکنن. اما فقط زمانی میتونیم این کار رو بکنیم که با تمام قلب و جونمون به اون اعتماد کنیم. اگر خداوند شبان نیکوی شما نیست، زندگیتون رو تسلیم کنین و از اون پیروی کنین. و اگر این کار رو کردین، همه نگرانی هاتون رو به اون بسپارین چون که اون نگران شما هست. ترتیبی بدید که هفته آینده در ادامه مطالعه کتاب مقدس با ما باشید تا روز خدا به شما به فراوانی برکت بده.